ناستان فرزند هلوها. در قدیم پیرمرد و پیرزنی در کلبه کوچکی کمی دور از دهکده زندگی میکردند. پیرمرد هر بامداد به جنگل میرفت و پیرزن توی خونه تنها می موند تا به کانون کوچیک خونه برسه هر دو فعال و پرکار بودند و زندگی آسوده و آرومی داشتند اگر قم بزرگی به دل نداشتن، بدون شک باید از زندگی خود خوشنود باشند و خودشون رو خوشبخت بدونند اما اون دو فرزندی نداشتند و با فرارسیدن روزهای پیری تنها و بیکس بودند پیرزن به هنگام جارو کردن حیات کوچیک خونه اغلب با خودش میگفت اوه چه خوشایند بود که اینجا پسر بچه یا دخترکی بازی می‌کردند پیرمرد هنگامی که بابار سنگینی از ترکه ها از جنگل برمیگشت در عالم خیال پسرکی رو میدید که به پیشوازش میاد و به مهربانی روشو میبوسه اما این اندیشه ها دردی رو از اونو دوانه میکرد. اون دو فرزندی نداشتند و کار خودشون رو با غم و اندوه انجام میدادند. تنها تو خواب و خیال زندگی می کردند. روزی پیرزن به عادت همیشگی غذای پیرمرد رو توی دستمالی بست و اونو به جنگل فرستاد و خودش رخت های چرکشون رو برداشت و لب رود برد تا ببره اونجا به شوره. رخت رو شست و آب کشید و تا موقعی که پشتش اونقدر درد گرفت که دیگه نتونه کار بکنه سرش رو از روی کارش بلند نکرد. پیلازا گفت بهتره کمی خستگی در کنم. بلند شد که بره اما ناگهان شگفت زده برجا ماند و گفت عجب این که روی آب میاد چیه؟ دستش رو سایهونه چشمش کرد تا بهتر ببینه دید که حلوی درشت سرخی به آرومی به لب رود نزدیک میشه. پیرزن با خودش گفت واقعا برای این حلوه اونم حلوی به این درشتی آخه الان که فصل حلو نیست شتابان چوبی برداشت و حلو رو قبل از اینکه بتونه راهش بره به طرف خودش کشوند حلو بویی آنچنان خوش و دلاویز داشت که پیرزن رو مدهوش کرد. پیرزن با خودش گفت با بابویی چنین خوش بیگمان بسیار خوشمزه هم است. گازی به اون زد. آه! چه هلوی ترد و شیرینی! روی زبون آب میشه! بیرزن که خیلی خوشحال شده بود، هلو رو گاز زد و گاز زد تا اینکه همه شو خود. تنها اون وقت بود که به یاد شوهرش افتاد. با خودش گفت. من چه زن بدی هستم. همه حلوی دروش رو خوردم و لذت بردم. برای شوهرم همه هیچی از اون نگه نداشتم. اگه اون بعد از تمام کردن کارش حلویی میخورد چقدر براش لذت داشت. اما من چقدر کله پوک بودم که زودتر به این فکر نیفتادم. پیرزن به این گونه مینالید و خود رو نفرین میکرد. اما چه فایده دیگه حلویی در میان نبود. پیرزن با امیدواری گفت اگه آب هلوی دیگری با خود بیاره ممکن نیست اونو بخورم. اونو براش نگه می پیرزن دست از شستن رخت کشید و چشم به رودخونه دوخت. بدین امید که روی اون هلویی ببینه و اونو بگیره و برای شوهرش نگه داره. پیرزن نگاه کرد و نگاه کرد و بعد از لختی باز هم هلویی روی آب پیدا شد. هلویی بزرگتر و سرختر. پیرزم و خودش گفت آه خدا کنه که دستم بهش برسه دومن خود رو بالا زد و توی آب رفت با چوب بلندی که دستش بود اونو به طرف خودش کشید برای کشیدن حلو به طرف خودش اونقدر روی آب خم شده بود که چیزی نمونده بود دراز به دراز تو آب بیفته اما به هر زحمتی بود حلو رو به طرف خود کشید با خودش گفت آه این یکی دو رو و خوشبوتر از هلویه که من خوردم. شوهرم اینو با چشماش میخوره. پیرزن رختای شستش و توی زنبیل رو حلو رو, رو روی اونا گذاشت و شتابون به خونه برگشت. حلو رو در درگاهی پنجره نروس رو به روی در ورودی گذاشت تا شوهرش به محض وارد شدن به خونه اونو ببینه. بعد رفت و شتابان به آماده کردن غذا پرداخت. شامگانان پیر پیرورد به خونه برگشت. او آنچنان تو زیر بار ترکه ها خم شده بود که تقریبا زیر اونا دیده نمیشد. اونها رو گوشه از حیات ریخت و بعد از اینکه کفش‌هاش رو در آورد وارد خونه شد. تازه پای در آستانه در نهاده بود که پرسید چه بویه اینقدر خوشه این بوی هلوه اما الان که فصل هلو نیست پیرزن خندید و گفت با این همه هلوه من اونو از ردخونه گرفتم نانگاه برای شوهرش تعریف کرد که چطور هلو به دستش رسیده اما فراموش کرد بگه که قبلا هلو نخورده میرمر گفت یقین این یه حلوی معمولی نیست. سو چاقوی بیا تا نصفش کنم. هر کدوم از ما یه نصفی ازش بخوریم اما میدونی چه اتفاقی افتاد. حلو نزش نصفش کند. حتی موقعی که پیرمرد چاغوی چاقوی خودشو تیز کرد، حلو مقاومت کرد. می انگار اونا از چوبی بسیار سخت درست کرده بودن. پیرا مرد گفت من میرم و یه اره از همسایه ها میگیرم و بعد دنبال اره رفت اما در راه پاک فراموش کرد که برای چه کاری پیش همسایه ها میره با خودش گفت یقین زدم منو دنبال کوفته برنجی فرستاده اون تمام روز رو رخشویی میکرد فرصت نداشت غذا بپزه پیرمرد از یکی از همسایه ها یک کاسه کوفته برنجی گرفت و بهش گفت زنم فردا براتون کوفته برنجی های تازه میاره و بعد به خونه برگشت تازه در رو باز کرده بود که چشمش به هلوی سرخ رو افتاد و یادش اومد که دنبال اره رفته بود به زنش گفت: زن من عجب گییت شدم به جای ره کوفته برنجی آوردم باید برگردم اما اون احتیاجی پیدا نکرد که پیش همسایه هاش بره چون درست و همین موقع حلو خود به خود نیست شد و از بینش پسرکی بسیار کوچیک و زیبا بیرون پرید. پسرک خندید و به شادمونی گفت من موموتارو بزرگترین پسر حلوهای سراسر ژاپنم زن و شوهر ماتشون برد و ندونستن چی بگن. قبل از اون که به خودشون میان به شادی فریاد کشیدن و گفتن بالاخره ما هم صاحب پسری شدیم. پسری کوچیک و ظریف به نام موموتارو که بزرگترین پسر حلوهای سر و سر اون دوتا کدک رو نوازش کردن. اونو برداشتن و روی کف دستشون گذاشتن. ناگهان این فکر به سر زن زد که ممکنه پسرشون گرسنه باشه گفت بچه حلو چیزی میخوری؟ پسرک گفت برام آبگوشت ماهی چربی درست کنید. از اون پس پیرزن آبگوشته چرب ماهی، برنج، ارزن خوشمزه براش پخت. پسر هلوها بزرگ و بزرگتر شد. اول تو فنجانی براش غذا میدادند. اون به بزرگی فنجان شد. بعد تو ماهیتابه به اون غذا دادن. اون به بزرگی ماهیتابه شد. و چون بازم گرسنه میشد، پیرزن تو یه توقر خمیرگیری غذاش میداد و دیری نگذشت. که او به بزرگی تقار خمیرگیری شد. پیش از اون که پیرزن و پیرمرد بفهمند تو کلبه خود مرد جوان نیرومند و بلندبالایی داشتن که همه چشمان رو به سوی خود جلب می کرد. این جوان زولفایی داشت به سیاهی آب نوز که روی پیشونیش می‌ریخت و چشمایی که چون ستاره ها می درخشی. او آنچنان نیرومند و پرزور بود که میتونست تخت سنگ‌ها را بشکنه. پیرزن و پیرمرد نه تنها او را خوب میخوراندند، بلکه در تعلیم و تربیتش هم میکوشیدند. از این رو موموتا رو در هر کاری توانا و چیره دست شده بود. او در گفتگو با همسایگان فروتن و مهربان بود. در دهکده همه دوستش داشتند و پیرمرد و پیرزن خودشون رو خوشبخ می که چنون یار و یاوری پیدا کردند. شبیه از شبا موموتارو و پیرمرد به عادت هر روز از جنگل برگشتند و هیزوم ها رو توی حیات خونه روی همم هم باشتند و به خونه رفتن. با پیره زن نشستند تا شان بخورند که موموتارو ناگهان دست از خوردن کشید و گفت پدر بزرگ مادر بزرگ شما منو پرورده اید و بزرگ کردید. من با دل و جون از زحمت هایی که بران کشیدید از شما سپاس گذارم. من در سایه زحمت های شما پسری بزرگ و نیرو من شدم. اما اگر بگم که اینجا تو این دهکده نیروهای من به هدر میره از من ناراحت نشید. جمع کردن هیمه و فروختن اونها تو بازار کار من نیست. من میخوام کار مناسبتر و مهمتری انجام بدم. کاری که به درد مردم بخوره پیرمر پرسید خوب مموتارو چه کاری میخوای بکنی؟ مموتارو گفت من میخوام به جزیره شیتونا برم و اونها رو که بلو و مصیبت‌های بسیار سر مردم میارن نابود کنم مادر بزرگ برای من کمربند و شلوار تازهی بدوز مقداری گرده نان جو و ارزن و بلوط که بهترین گرده نانهای ژاپنه، بران بپست پیرزن به شنیدن این حرفا گریه سرداد و گفت پسر هلو منو نگاه کن ما هر دوتامو پیر شدیم تو این دنیا جزتو کسی رو نداریم اگه بلایی سر تو بیاد ما چیکار کنیم سر ما چی میاد؟ جزیره شیطون جایی بسیار خطرناک و تا حالا کسی از اونجا زنده برنگشته. تو هم نمیتونی از اونجا برگردی. نره اونجا. پیرزن به التماس از اون درخواست میکرد که نره. پیرمرد هم به نوبه خود با قیافهی گرفته و با لحن زده گفت پسر جان، پیرزن راست میگه حرفش حرفشو گوش کنی. تو حتی نمیدونی که اونجا چه خطرایی تو انتظارته. شیطونا ستمگر و کینه ورزن. من، حالا رازی رو برای تو فاش میکنم که تاکنون اونو به هیچ کس نگفتم و بهتر بود که بیاد یاد اونم نیافتن. ما اهل این ناحیه نیستیم. ما بیشتر در جایی که امروز جزیره شیتونها خونده میشه زندگی میکردیم. اونها اونجا جای زیبا و خوش آب و هوایی بود. همه جا کچزاران سرسبز سرس بود و جنگل‌های پر از درخت مردم در زهکده متعدد اونجا به خوشی و خورمی زندگی میکردند. اما روزی شیطون به جزیره رکھدن و همه مردم رو نابود کردن و کشدار رو از میان بردن و جانوران رو ناچار کردند که جنگلای اونجا رو ترک بگن. ما تنها در نتیجه تصادفی خوشفرجام تونستیم جای خودمون رو آزاد کنیم و به اینجا فرار کنید تو اینجا از ما به خوشرویی استقبال کردن پسر جان جزیره شیطونا نرو تو میتونی همینجا هم برای مردم سودمند باشی. اما پسر حلوها از تصمیمی که گرفته بود برنگشت و حالا که دونسته بود شیطونا چه آزارایی به مردم ها و حتی این دو پیر بسیار مهربون رسونده در تصمیم خودش برای رفتن به اونجا و پیکار کردن با شیطون ها استوارتر شد. گفت من از نیروی خودم از اون چه که شما به من آموختید سود میبرم. بر شیطونها ها چیره خواهم شد. ممتارو در رفتن به جزیره شیطون ها چنان مصمم بود که دو پیرچاره جز تسلیم و رضا نداشت. پیرزن کمربند و شلوار تازهی براش دوخت و بهترین گرده نونهای جو و ارزن و بلوت تمام ژاپن رو براش پخت. پیرمردم از صندوقش یک کتری فلزی یه شمشیر شگفتانگیز تیز و بران که از بهترین فولادها ساخته شده بود بیرون آورد و گفت این شمشیر و این کتری تنها چیزاییه که ما تونستیم از اونجا با خودمون بیاریم. بیا شمشیر گوهنه پدران من رو بگی. این شمشیر در پیکار با شیطون ها تکیه گاه تو خواهم بود. بعد روپوش کدری رو برداشت و به مومتارا داد و گفت، این روپوش هم به دردت میخوره. نقشه راهی که به جزیره شیتونها ها میره، روش دخته شده. در میان دشتی پهناور سنگ بزرگ سیاهی و زیر این سنگ، سوراخی و در این سوراخ تنابی هست اگه بخوای به جزیره شیطون ها بری باید اون تناب رو بگیری و پایین بری موموتا رو از پیرمرد سپاس گذاری کرد شمشیر رو کم به کمر بست و مخچهی که بهترین گرده نونای جو و ارزن و ولوت ژاپن توش گذاشته شده بود و برداشت و رو پوش کتری رو هم در اون گذاشت و با پیرمرد و پیرزن زن خدافزی کرد دو پیر باهاش خداافظی کردند آرزوی پیروزی براش کردند و تا در حیات بدرقش کردند در اونجا ایستادند و اون رو که از اونها دور میشد با نگاه دنبال کردند ماتارو با دل شاد و خورن راه میپیم از اندیشیدن به کار بزرگی که میخواست انجام بده و از اینکه برای موفقیت توی اون باید همه نیرو و دانایی خودش رو به کار بگیره لذت میبر. یه روزی در نزدیکی دهکدهی سگ سفیدی نزدیکش شد و دوستان سلامش کرد و گفت روز بخیر مما تو را. کجا میری؟ مما تو گفت میرم به جزیره شیتونها تا همهشونو نابود کنم. تو توی چی داری؟ ماما رو گفت بهترین گردی نانهای جو و ارزن و بلوط تمام ژاپن که مادر بزرگ برام پخته. سگ سفید بهش گفت بذا منم مزه بهترین گرده نانای ژاپن رو بچشم. ماما رو گفت با کمال میل اما در عوض تو هم باید سرباز من بشی. سگ موافقت کرد و موموتارو یکی از بهترین گرده های نون تمام ژاپن رو به اون داد. سپس اون دو با هم را افتادند. اونها روزی به جنگلی رسیدند. قرقوولی پیششون اومد و گفت روز بخیر ای مرد جوان! روز بخیر ای سگ، شماها کی هستید؟ کجا میرید؟ موموتارو گفت من موموتارو بزرگترین پسر اولوهای تمام ژاپنم اینم سگ که شیرو نام داره سرباز منه ما میریم به جزیره ها تا همه‌شون رو نابود کنیم پرنده گفت چه بخچت چی داری موموتارو گفت بهترین گرده‌ی نانهای جو و ارزن و بلوط تمام ژاپن رو که مادر بزرگ برام پخته قرقاوول ازش خواهش کرد یکی از اون گرده های نون رو بهش بده. مومتارا گفت میدم اما به شرطی که تو هم سرواز من بشید. قرقاوول قبول کرد و یکی از بهترین گرده های نون تمام ژاپن رو گرفت و با مومتارا و سگ همراه شد. اونها ستایی توی جنگلی انبوه به میمونی برخوردند. میمون از دور فریاد زد و از اونها پرسید شما کی هستی؟ کجا میریم؟ مماتارا گفت من مماتارا بزرگترین پسر الوهای تمام ژاپنم این شیرو سگم و قرقاق و ول سربازان منم. گفت تو بخچت چی داری؟ مماتارا گفت بهترین گرده نونای جو و ارزن و بلوط تمام ژاپنو که مده بزرگ بران پخته. میمون آهی کشید و گفت آه چقدر دلم میخواد که منم مزهی بهترین گرده نون تمام جاپن رو بچشم. یکی از اونا رو به من میدی؟ موموتارو رو گفت میدم اما به شرطی که سرباز من بشید. میمون قبول کرد. یکی از بهترین گرده های نون تمام ژاپن رو گرفت و با اون ستا همراه شد. موموتارو رو گفت حالا که عده ما زیاد شده باید کارا رو بینمون تقسیم کنیم. من سردار شما میشم. سگ، شیرو، آجدان منه و قرقابل و میمون سربازان ساده. جانوران از این تقسیم کار خوشنود شدن. چون هر چارتاشون بسیار خسته بودند، زیر درختی نشستن و هر کدوم گرده نانجای خودشون رو خوردن. گرده چقدر چقدرم خوشمزه بود. اما جایی تعجب نبود. چون اونها به راستی بهترین گرده نانهجو تمام ژاپن بودند موتارو و همراهاش با خوردن گرده نون نیرو گرفتن و بعد از استراحت کوتاه دوباره به راه ادامه دادند جنگل در اطراف اونها بسیار فشرده و انبوه بود و کوچیکترین قسمتی از آسمان آبی هم از لابلای شاخه‌های درختا دیده نمیشد اونها کمی در سربالایی رو به بالا خزیدند و بعد در آب های پرشی فرود اومدند و آنچنان خسته شدن که به دشواری میتونستن راه برن. ناگهان جنگل به پایان رسید و اونها خودشون رو تو هاشه یه دشتی پهناور یافتند. در برابرشون بیابونی سنگلاخ گسترده شده بود و تا جایی که چشم کار میکرد سنگ بود و سنگ. کوچکترین نشانی از سبزه و گیاه دیده نمیشد موموتارو در اونجا ایستاد جوپوش کتری رو از بخچه بیرون اورد و گفت حتما اینجا همون دشتیه که به در پدربزرگ برون تعریف کرده در مرکز این دشت باید سنگ سیاه بزرگی باشه هدف بعدی ما رسیدن به پای اون سنگه اما من نمیدونم چطور میتونیم اونو پیدا کنیم دشتان چنان فراخه که مرکز اون از اینجا دیده نمیشه. اگه به خط مستقیم پیش بریم، ممکنه توی این دشت سنگلاخ گم و سرگردون بشیم و راهی برای بیرون اومدن از این بیاقون پیدا نکنیم. مهدر قرقابول پرواز کنه و چندان در آسمان اوج بگیره که سنگ سیاه رو ببینه و بعد راه رو به ما نشون بده. اون همه اونها تو سایه درخت جنگل نشستن و گرده نونهای بلوت رو که بهترین گرده نونای تمام ژاپن بود، خوردن. بعد از اینکه نیروی تازه پیدا کردن، راهشونو رو از سر گرفتن. قرقابول پیشاپیش پیش اونها پرواز میکرد و راه رو نشونشون می اونها رفتن و رفتن و دمی در جایی نایستادند آفتاب داشت سنگلاخ رو سنگ دلانه می سوزود. در هیچ جا تریسایه ای نبود که به اون پناه ببرند. قرقاول دم به دم آهستهتر بال میزد او به دشواری میتونست در ارتفاع بالاتری پرواز بکنه تا سنگ سیاه از چشمش گم نشه زبان شیرو سگ از دهانش بیرون افتاده بود و لح لح میزد. نفسش مند اومده بود. اما میمون اون دیگه مثل همیشه با شادی و نشاط چست و خیز نمیکرد. حتی چندان به کندی راه میرفت که دیگران ناچار میشدن دن بدن به این سنو منتظرش بمونن که خودش رو به اونها برسونه. مموت ها دستمال روی پیشونیش بسته بود تا عرق توی چشماش نریزه. با دقت افق به رو به امید پیدا کردن مقصد با نگاه جستجو کرد. سرانجام در جایی خیلی دور، چشمش به سنگ سیاه بزرگی افتاد که در میانه بیابون سربرف راشته بود. با دیدن هدف، هر چهارتا اندکی نیرو یافتن و تونستن به زودی خود رو به سنگ سیاه برسونن و تو سایه اون بشینند. موموتارو گفت، رسیدیم. زیر این سنگ باید دهانه چاه و در اونجا ریسمانی باشه. اما قبل از اون که ریسمان رو بگیریم و پایین بریم و خودمون رو به جزیره شیتونها برسونیم باید بشینیم و با خوردن گرده نونای ارزن که دستپخت مادر ماده بزرگه نیروی تازهی بگیریم. اون بخشه گرده نان ها رو باز کرد و همه گرده نون رو خوردن و خوب سیر شدن و اون وقت با نیروی تازه سنگ رو جابجا جا کردند. اول میمون پایین رفت. بعد موموتارو که شیرو سگ رو در بخشه گذاشته، اون رو به کتف خودش گذاشته بود. قرقاول بعد از همه توی چاه رفت. اونها در تاریکی پایین و تر رفتن. اما اینطور به نظر میومد که هرگز انتهای تنه نخواهند رسید. بالاخره زمین سخت رو زیر پاهاشون احساس کردند. اونها به جزیره شیتونها رسیده بودند و در برابر اونها دیجی بزرگ که با تیرهای بلود ساخته شده بود، سربرف راشته بود. دیج روزوزه شیطون ها از پایه به لرزه انداخته بود. مومدها رو یاراش آماده پیکار شدند. بعد میمون رفت و در بزرگ آهنی رو کوبید. صدایی از درون دش برخاست که چه کسی جرأت کرده بیاد و در مارو بزنه موموتارو فریاد زد من موموتارو بزرگترین پسر هولوای تمام ژاپن که با یاران خود به این جزیره اومدم تا همه شیطانها رو نابود کنم به یک چشم هم زدن گروهی از شیطانهای کوچیک زرخ چهار دوست رو در بین گرفتند موتارو شمشیر کشید و اون رو به چپ و راست و پشت سر و پیش روی خود نواخت. قرغوول چشمای شیطونها رو در آورد شیرو که سگ باشه پاهاشون رو گاز گرفت. شیطونهای سرخ ترسیدند، پا به فرار گذاشتند میمون فراریان رو با جستاخیزهای بلند دنبال کرد و پوسته هر کدومشون که به چنگ می آورد پاره پاره می کرد. تنها شماره اندکی از شیطونهای سرخ تونستن فرار کنند و به درون دژ پناه ببرند و به سرعت خودشون رو به تالار بزرگ بسوندن و این خبر رو به شیطونهایی که در اونجا بودند بسوندن و خبر دادن که دشمن حراس انگیزی به اونها تاخته. شیطونهای بزرگ سبز در دژ زیافتی برپا کرده بودند اونها در موقعی که شیتونهای کوچیک سرخ به تالار در اومدن روی هری دراز کشیده بودند. اونها چشمای بزرگ آبی رنگی داشتن که دائما میچرخیدند و در میان دو چشم مینی دراز نک برگشتشون تقریبا تا دهان گوشادشون پایین افتاده بود. اونها سخونهای های رو میجویدند و به پشت خود میداختند. شیتونها پیش از اندازه عرق نوشیده بودند و مس کرده بودند و آنچنان اروده میکشیدند و حیاهو سر صدا در تالار را انداخته بودند که کدوم از اونها صدای پیکار بی امانی را که بیرون از دش جریان داشت نشنیدند چون شیتونهای سرخ سراسیمه به تالار بزرگ اومدن خیلی طول کشی تا شیتونهای سبز متوجه حضور اونها بشن. شیتون سیاه فریاد زد شما بی سر و پاهای بی همه چیز به چه چجورتی اومدید و خوشی ما رو به هم می شیطونای سرخ نالیدن که ممتارونامی با سپاه خود در برابر دژ موزه گرفته و میخواد همه ما رو نابود کنه. شیطونای سبز شکمشون رو با دستشون گرفتن که از قه خاخندشون درد نگیره و به حیرت گفتن. چی گفتی؟ ما رو نابود بکنه؟ ما رو که هراسانگیزترین هنگیز ترین هستیم؟ ها ها ها ها. چشوخی خوشمزهی. مدت هاست که ما چنین حرف عجیب و خندهداری نشنیدیم. این مردک گستاخ و بیشرم کجاست؟ چه به موقع هم اومده؟ ما به شبچره احتیاج داشتیم. ناگهان صدای نیرومند و روشن برخواست که من اینجا هستم. موموتارو با یاران خود در بین چهارچوب دریستاد و فریاد زد من موموتارو بزرگترین پسر هلوهای تمام ژاپن که با آبگوشت چرب ماهی و فرنیهای خوب بزرگ شدند با سربازان خودم اومدم تا همه شما رو نابود کنم و انتقام مردمی رو که به دست شما کشته شدن بگیرم ما همه گرده نونهای جو و ارزن و بلوت رو که مادر بزرگ پخته بود و بهترین گردن تمام ژاپنن خوردیم. با خوردن اونها هر کدوممون زور ده هزار مرد پیدا کردهیم. من شما رو به پیکار میخونم. خونم. سبز ترسیدند. با خود فکر کردند به جای در افتادن با چنین قهرمانی بهتر از اون همان بخان. به و همراهاش چیشکشی تقدیم کنند و بپذیرند که هرچی بخوام به اونها بدن. به شرطی که با مسالمت از اونجا برن. شیطون سبز با خود گفتند بزار حالا از اینجا برن به زودی ما همه اونجا رو که از دست دادیم دوباره به دست میاریم. اما ما مطارب پی به نیرنگ اونها بود و اعتناعی به زاری و التماس نکرد. شمشیرش و کشید و با سربازاش به اونها حمله بود. چه جنگ مقلوبه ای. چه کشتاری. هرگاه شیطان سبزی به هزار زحمت میتونست از دم شمشیر و بران مومتا رو ببریزه شیرو سگ گازش میگرفت و قرقابل چشماش در می آورد و منقار تو سرش میکفت و بالهاش رو با چنان سرعت و شدتی به هم میکوفت که ها جایی رو نمیدیدند میمونم کوزه ها رو پشت سر فراری ها میانداخت. هیچکدوم از شیطان ها نتونست فرار کنه. دیش قرق در غریب و حیوهوی جنگ شده بود و شیطان های نومید نمیدونستند به کجا فرار کنن و کجا پنهان بشن. اینطور به نظرشون میرسید که ده هزار شمشیر به سرشون فرود میان. ده هزار گازشون میگیره و ده هزار قرقاول منغارشون میزنه. و اونها که از این جنگ و گشتار حراسنگیز میگریختند میپنداشتن که ده هزار میمون سر در پیشون گذاشته و پوستشون رو میکنه سر انجام و مطارب سر شیطون سیاه رو برید و جنگ به پایان رسید یاران که جنگ و پیکار خستهشون کرده بود همه جای دژ رو گشتند و گنجهایی رو که پیدا کردند بار ارابه کردند و راه بازگشت در پیش گرفتند اما قبل از بیرون رفتن از جزیره دژه ها آنجا را آتش زدند تا نشانی از اونها در اون جزیره نمونه روزی مردم دهکده دیدند که گروه عجیبی به اونجا میاد پیش گروه ای بود که بیش از ظرفیتش بار برش زده بودند و سگ و غرقاولی از پیش و میمونی از پس اون رو پیش میراندند و در کنار اون مردی جوان راه میپیمود که قیافه ای زیبا و خوشایند داشت و شمشیری بر کمر بسته بود و دوستانه روی همه لبخند میزد همزایه ها شگفت زده فریاد کردند، این که مومتاروه شتابان دویدن و خبر خوش بازگشت پسر هلوها رو به پدر بزرگ و مادر بزرگ ها دادند چقدر و شاد و خوشحال شدن پیرمرد و پیر زن وقتی دیدن فرزندشون بزرگترین پسر هلوای تمام ژاپن و حیات خونشون وارد شد اودوتا نمیدونستند لحظه چشم از روی فرزندشون بردارن. موموتارو ناچار شد چندین بار برای اونها تعریف بکنی که چطور بر های آزارگر ستمکار چیره شده خبر پیروزی دلاورانه موموتارو به گوش فرمانروای اون سرزمین رسید و اون موموتارو رو به فرمان فرمانروای جزیره آزاد شده گماشت. موموتارو به زودی زنی گرفت، زنی که زیباترین دختر تمام ژاپن بود. اونها تا پایان عمر با پدر بزرگ و مادر بزرگ در خوشی و خورمی زندگی کردند. شیرو، سگ قرقاول و میمون هم گهگاه به دیدن اون میومدن و مادر بزرگ فراموش نمیکرد که از اونها با بهترین گرده نانهای تمام ژاپن پذیرایی کنه.